و آله طایبین طاهرین المعصومین اللہ تعالیم تعالیم اللہ موفق ناجمی مشتقلین و آرحمت رحمت رحمت رحمت از شدیه در کتاب اصول کافی موجوده که فعلا جای دیگر نظریم منحصر به همین کتاب ظاهر این دو ربایت این است که اگر انسان بدون کتاب مال شخصه میتونه از او روایت میکنه این دروایت خوندیم من دیروز مطلب یعرض کردم که در وسائل این دروایت حد سبه ها فعی کن هم کرده بر کتاب معینه این حاشیه وسائل من اشتباه نراتم تصحیح رو کنم ولی مزموهای شهرانی درست مطلبیشان یعنی اقتلاق ظاهر روایت ولی این ظاهرم بود همه شد حاله دو تا روایت که عمله به ظاهر این دوتا خیلی مشکله و میشه توجیح کرد چون در اون زمان یه شده بوده که مثلا کتاب رو بدون اجازه بدون روایت نقل نکنن شاید مراد امام علیه السلام این بوده که اگر یقین داریم این کتاب مال مؤلفه نقلش اشکال نداره نیازه به اجازه نداره شما میتونید کتاب نقل بکنیم بدون اجازه شاید مراد این باشه مراده این دو حدیث شریف از کردم هر دو حدیث به لحاظ سندی مشکل دارم و قبول ظاهرشون خیلی مشکل دارم. لیکن میشه قابل توجیح هست چون یه یورتین کتار ولایه بول ارهی عنی اجازه نمیده اما میشونه ازا علم تن کتاب الله فرهی ان اگر دلیل همه رو به کتاب فکر زن و که خیلی واضح به خود شخصم بگنیم یعنی در باب نقل لازم نیست حتما اجازه داشته باشید میدونید این کتاب مال اونه یا حالا تشکیز خط میدین یا خودش داده یا شواهد اضاع علم بدونید که یقینا و کذاله قال حد سو ها فه ها حق کن این حد سو به فه ها کن یعنی یقین داشته باشیم که این کتاب مال اون هاست اون وقت من دیروز امی کردن فارغ کردم پوکیخ کتب وایا کتب مشهوره یکی از اونم سوال کرد که این کتاب درذ مشهور نداره مراد ما از مشهور که الانم در اصطلاحات مفارته مثلا میگن یعنی کتب مشهوره صد و کتب مشهوره شیخ مفید مراد از این شهرت یعنی شهرت انتصاب کتاب به این شخص مثلا کتاب ملا یزول تاریخ خیلی معروفه نسخه‌ش هم فراوانه مراد از مشهور یعنی یعنی به عبارت دیگر مراد از مشهور همون عبارت امام فرمود الا علم که انر کتاب له این انر کتاب له شهرت احراز این مطلب خوب دقت فرمودید چون میگم ان روز اولی که این بحث این بحث سوال کرد که در این روایت نظره کتب مشهوره نداره مراد از عبارت کتب مشهوره یعنی کتبی که کتیر است و فراوان است و در کتب اصحاب به اسم این شخص آمده این کتاب رو میشه شما نهارو بکنیم بدون اجازه همون کاری که الان میکنیم اصل و اینجور بباید بیشتر به اصطلاح اصولی مثل امر در مقام توخم حضره توخم منه میشه نهارو بکنیم بله میشه اما با شرائط خودش. مثلا بگید من این مطلب رو از کتاب من لایه چاپ فلان، سنه فلان، که به تحریج فلان با این خصوص اینا رو بگید درد می فهمن. لازم نیست حتما اجازه داشته باشین از استادی اون از استاده اگر مشهور باشه الان مثلا کتاب شیخ مفید غالبا مشهوره کتاب نام اختصاصات هست محل کلام الانم هم مثلا مرحوم اصطافیه معجم یا غیرش میگه فیل اختصاص المنصوب مفید محل کلام و حتی اگر کتاب مسلمن بازمال شخص باشه نسخه هم محل کلام باشه اونجا را هم باید دقت بکنه مثلا مرحوم اصطاف کتاب اونان مدینه طول علم داره به حسب توصیفی که در کلمات آمده دو برابر و این کتاب فقیهه چون کتاب فقید نوشتن چهار جلد اون مدینات سال علم نوشتن ده جلد حالا ما تو نهیدیم مدینات سال علم گفتن ده جلد در مقابل فقید که چهار جلده دقیقی فرمون خب این کتاب یه مدتی هم موجود بوده این هم جای بحث نیست مرغوم پدرش اعتباهایی اصول وصول اخیار کتابی داره شبیه درهایه وصول الاخیار الى وصول الاخبار مصادر معروف شیعه 5 تا میگیره هم مدینه تول علمه یعنی البته اینقدر کتاب شهرت نداره چون من نمی‌دونم چطور شده ایشان احتمالاً همشاد مدینه تول علم احتمالا گزینشی نبوده چون فقیق گزینشیه کتاب فقیق مثل کافی من کران عرض کردم در و اربعه کافی و فقیق گزینشیان تهذیب و استصاح گزینشی نیستن تهذیب شهر شده که هر چی بیاره استفاده شامل از روایات متعارض بیاره نه اینکه خودش اختیار کرده باشه اما مرحوم کلینی اون چرو اختیار کرده میاره و خود در فقه شاید من در علمم چون لازم که کتاب رو خلاصا خیلین به شاید ختمش می‌کنه شاید این طور بوده البته بعضیا نقد کردن بعضی از این متأخرین هم نقد کردن مرحوم جزار بهدل اونو چون تازه این کتاب چاپ شده کتاب قشنگیه خیلی فواید خوبی داره نسبت به خودش استفاضه خیلی مشهور نیست من هم توزه چه سابه ازم توانجه بیده بودم کاری کردن. الان اخیراً چاپ کردن چاپ دو جلدی شده طب قطع عالم فی شرف خطبت معالم دو جلد چاپ شده فقائد خوبی داره سابه مرد به اصطلاح موزیومات دارت اون معرفی موسوعی تاریخ و غیر تاریخ و اینها رو تقیق در حدیثی در حدیثی به شنگ نرشته کتاب میشه که اون با اینکه که چون مطالبی که ایشون نوشته خیلی میشه توصیح داد اما خوبه به اونجا در نظر خیمابودی معروف بود که مثلا در مصدر حرام نماز بین اهل سنت داره که ده هزار تر معروف اهل سنت در مصدر حرام ده هزار ما تو رویات ماست پده هزار هم داره که یک گرفت در مصدر حرام وقت معروف بود که در حرام هم نیرال مومین این الان فقط من تا جایی که من دیدم آنید اگه بعد از که داری شه مرحوم سه جعفر بهرالالوم در همین طبقه طرعالم از کتاب مدینه طول علم صدوق نرمه کنن حالا من نبیرام دستی ایشان بوده می‌فهمم. امبارد این امیده که از صلاة و اندالیه عنوان حرم نداره از صلاة و اندالیه معت و عرض دو برابر کرده اگر حالا پرسونید در یک کتاب خانه هی. کتاب مدینه طور علم پیدا میشه، ولو کتاب مدینه از علم مال صدوقه دبعت بکنی باز هم شوانیم این نسخه ولو تاریخ نسخه سال و باشه چیستر باشه قدیمی باشه عطیق باشه نمیتونی بگید این همون کتاب مدینه طور علم صدوقه چرا؟ چون مشبور نشد در قسمان کلمه مشبور امام میخواد ادا علمت کتاب لر اگر میدونید که این کتاب مال و عو پس این در حقیقت نازل بین متوقفه بر اجازه نیست کتبی که مشهور است انتصابش به مؤلفش دقیقه سمزید انتصابش به معلفش معروف است کتب مشهور بین از خوابه مسلمن معلفش نوشته شما میتونید از اون نقل بکنه باید اجازه نداشته باشید خب متعارف این با شهرت میدونم تحبیر شهرت نمازه الان اگر جلد هیجله وسایل چاپ قدیم میدونم این اگر حسن رسون توی بحث قضا اول پسل اول مقدمات قضا 9 یا هفت یا یازدهش نمیدونم بیارید عبارت خود سابسال این طوره و جیت روایات موجوده افل کتاب مشهوره مراد از کتاب مشغوره مرادشون اینه یعنی کتبی که در دست بست بوده به معلفی کافی خیلی نقل کردن دیگه جای برس نداره کتاب کافی جای برس نداره پس مراده از مشهوره یعنی شهرت واسعی به معلف داره نیاد. یعنی اداء علم تندر کتابله علایه حالا این دوتا روایه این دوتا روایه انصافا قبولش به حسب زار وقت بگیم مراد امام اصل جواز نقله نه یا نه اینکه مثلا شما بگید ان فلان به نحوه اند بیاییم با این در کتابش دیگیم اینی که پرویه ان مادام خودش اجازه نداده شما میتونی اینطور طور رئیس و فلان اش بختم کتاب و فلانی کتاب رو من داد ولیکن لم یرویلی دم یجلگولی و در کتاب اینطور بود مراد اینه یعنی با در مقام نهل دقت میفهمه تمام این ریزکاری ها رو منعکس بکنیم هدف اساسی این بود تمام این ریزی کاری ها منعکس بشه تا میراز ها سالم به ما برسه بتونیم بدیم الان همین حدیث مرد دعای افتصال خود این دعای افتصال و خیلی مشروعی این آدم شیعه در ماه رمضان می کند واقعا شد میلیون ها جلسه دعای افتصال هست این سندش این طوریه بعد از مرموم فوت مرموم محمد بن عثمان در کتاب های محدودی که بود. این دعا در اونجا آمده احتمالاً اون وکیل خاص حضرت بوده از امام شده وشده. یعنی به نحوه سما از محمد بن عثمان نقل نشده به نحوه وجاده نقل شده امام مثلا بس. علم در اعلیم تندن تقابله فرویه اند شما نیتونیم بگین آوجد ناپی کتب محمد ابن عثمان حالاً دعا نگید ان محمد ابن عصمان اگر حدیث رو اینجور معنا بکنید مشکل داره به چی شد؟ اگر بگید ان محمد ابن عصمان این مشکل داره اما اگر بگید نه این کلام است که در تپارها و در نصخه های حقیق محمد ابن عصمان پیدا کردید مراده امام است که بدون اجازه و این یک امر متعارفی هم هست من چند دفعه از کلم کتاب سیفه که این است مشهور هست و الکتابی تمام سماع نکه وجوده بعد موتی وجده به نحوه به جاده این همم شروع داره این همم نحوی حساب کرده الکتاب سیبه با یعنی در حقیقت از زمان حضر رضا به بعد امام مخواستنید بپرمه خیلی دنبال اجازه ندید اگر کتاب ثابته اگر کتاب امرش بازهه میتونید نقل بکنید نه اینکه که حالا مراد امام با تمام اون خصوصیات و اسطلاحات و بگین انه و بگین همده سنی اینجور نه پس این تصوری که در ذهنیت ادهی پیدا شده بود بدون اجازه نمیتونیم از کتاب نه نه بدون اجازه هم میشه نه الان یک کتاب از یک آقای چاپ میشه از معلفش هم اجازه نمیگیریم خب معلف در اقل شما قدمه نمشه بگین؟ کتاب فلانی به اسمهای فلانی چاپ شده تاریخ شده، چاپ اینه اینه من از این کتاب نحب میکنم ولو خود معلف به شما نگفتوز اروهی همین ممکنه بگیم حدیث اینه البته از کردم بعضی از شواهد هاچی قبولشان خیلی مشکله نیشکالا چین چیزی نبوده شاید بعضی از اصحاب ما مثلا همین کار رو کردم، خدایی نکرده مثلا فرس کنیم بعد از فلان آها کتابشو پیدا کردن ما گفتن انفلا لذا ما مثلا میگیم پیش ما شبهه داره این طبقه طبقه اونیست خیلی بعیده ایشان از اون نقل بکنه به طبقه با اون نمیخوره خب طبقه با اون نمیخوره معضل کلمه انفلا آمده به قطعه این چی شد؟ یعنی چیزی فصیح مفصل جواب اشکال فنیش اینه که کلمه ان در لغت عرب برای مجاوزه است عم و نیست و غیر سما خاص به سما به آیون حدیث از کادم امروز من در بحث از کادم این بحث رو علمای ما علمای ما مفصل ندارن اما در کتب اهل سنت در درایات الحدیث سیر مفصله اقوال قال فلان و قال فلان حدود 95 درصدشون گفتن که اگر به نقل و باشه حق نداره انعنه بگاه داری حضه قلیلی گفتنه چون انعنه هم و توضیحش را از کردیم سرش اینه که لفظه ان و من اگر در چیه در فارسی بنایه از تصیل میشه لیکن من به عنوان منشیت الانو میگن ابتدار سرش نشویه هست منشعیت هم معناش مجاوزه است یعنی تجاوز یعنی یک چیزی از یک چیز دیگری رد که بشه عبور کنه اندکار بدارم. و درذ وقتی گفت علی بن ابراهیم ان عبی این حدیث بعد از اب... ابی رد شده باشه دقیق بونه. این حد انا حدیثش گفت یعنی این سر اینکه بزرگان حدیث در دنیا اسلام اند به کار بردن نه نکتهش همین بود. علی بن ابراهیم ان عبی یعنی این حدیث این سخن از ابراهیم ناشم رد شد و لذا مشهور در اصطلاح که انه مسابقه با اتصاله مسابقه با سما اگر گفت این حدیث بخواد بگه نه شما میتونه انه انه رو کنید بدون ایک اتصالی باشه این مشکلی و انصافا هم مشکلی حقا یقال مشکلی احسن خصوصیات رو نمیگه این خلاصه جواب از بیسریان سوال که میگه خلاصه‌ یعنی شما متوقف نیستین از نقل از یک شخص حتما اجازه نقل کتاب رو، مثل که الان کتاب چاپ میشه، شما از مؤلف هم اجازه نمیگیرید. نقلم میکنید. باکن این اصلش یعنی نقل جایزه، اصلش نه. اما خصوصیات نگید آقای فلانی معناش اینه، شراک شد در کتاب شیدن؟ نه، شما بگید این مطلب رو در کتاب دیدن کتاب تاریخ چابش روش چنت نظر خود ایشان یا ایشان بود کل تحت نظر بچه این خصوصیات رو باز منعکس بکنیم این یک بحثه اصل این کلمه چون نظر بگی مثلا دیگری علیه یهود این دو تا حدیث راجع به میراث های حدیثی موجود ما تاثیر داره اگر خدای نکرده اونجوری معناش بکنیم که شما کتاب رو به نحوه وجاده بگیریم یا به نحوه مناوله بدون اجازه از مؤلفش بگیری، شما حق نقل اون حدیث رو به نحوه امعنه دارین به نحوه اتصال دارین اگر این مراد باشه که ظاهرشینه که این شالا این مراد نیست به هر حال این به درد حجیت تعبدی خبر میخوره تو نه از که نیست، قاعده خود جد نیست امام اجازه فرد این میشه تعبدی چون امام اجازه فرده میشه تعبدی اگر اون جور میشه بکنیم حجت تعبدی لاکن صحیح اینه که این حجت تعبدی ثابت نشد این را چه مضاف به اینکه این دو حدیث هر دو به لحاظ سند مشکل دارن و این تاپن این مطلبی رو خیلی مشکل مدیده بعضی ما به بالا در همین سنیا مثلا حدیث دوم رو خیلی حمله کردن که حتی اهم اجازه داده که حدیث سننه و نه نه رو هم با اینکه وجاده است چون میگه قایم کردن زیر زمین کلیدا معدر آوردید امام میگه حد شبهه ها یعنی چه عجیبه چطور امام یعنی امام معصوم چطور اجازه میده که انسان دروغ بگه خب این کتاب به جاده به شما رسید چطور میگه ان فلان حتی ان گفتن نداری من توضیحش ارشد کردم ظاهرا این دو تا روایت ناظر به این نکته باشن ناظر به این خصوصیات نیستن به هر حال چون هر روایت به لحاظ سندی مشکل داره ما فعلا اثبات تعبور و مخلبشم مشکل فی نفسه انصافا خیلی بعید ما به احلوه معنای رو نصفت بدیم ما الان به بعضی از علمام نصفت نمیدیم چه روز به احلوه زاهران باید هم بکنیم بر اون معنا اجازه شرط نیست میتونید از کتاب نقل بکنیم اما با خصوصیات نقل رو حدیث شماره 36 این حدیث از منفردات شیخ توسیت سابقا هم صحبت کردیم صحبت زیادی هم داره که جا شبا اینجا نیست قال عبالحسن ابن تمام البته شیخ تعبیرش قاله داره ولکن شواهد حاکی نیست که ایشون ابن تمام در کرده باشن بلده حالیس به لحاظ سندی هم مشکل داره که مرسله استاد ایشان نیست ابن تمام قال حدسنی عبدالله کوفی طبعا ایشون شده ایشون خادم حسین خسینون روح رضی اللهم دیگه قرار نبوده که شریعت رو از خدا خدا معلومه بود. خدمتگزار مرحوم حسین روح بوده. آل الصو ال شیخ یعنی یعنی مانه یعسود، یعسود اول قاسم. اول قاسم حسین روح نائب سوم حضرت. من بزرگوار، انصافا یعنی خیلی بزرگوار. ان كتب ابن ابرقراور. اینجا قراور چاپ شده، عزاغر چاپ شده. صحیحش عزا منم نمی‌فهمم عزاغر یعنی چی؟ ابن ابی عزاغر انچی. ایشون معروف است به شل مقانی شل مقانی از بزرگان علمای ما بوده در دوران غیبت صغرا به فکری میافتند مذهب او سمرو ایشون دستور میده یک کتابی رو جربه چون شیعه میگه متفرد شد دو خیلی اوضا بعد غیبت صغرا و از اون وقایع هم به دوران حیرت الحیره بله و از ایشون میخواست که برای جمع آوری کلمه شیعه به اصطلاح یک کتاب متن فکری بنویسه مثلا رساله احمد یه رساله عملیه به نیستی که مطابقه با مبنای قوم و بغداد هر دو باشه که هم بکنه بین دو مکتب قم و بغداد و این نوع عامل وحدت بین شیعه در زمان قیبت امام باشه که ایشون همین کتاب تکلیف بر نسخه مشهور اسمش تکلیفه بر نسخه مرموم شیعه در همین قیبت اسمش تعدیب نمیدونه تکلیفه تعدیبه که بعدها مرمومه آیه سردار مهی الله احتمال دادن این که رضای موجود همون تکلیف باشه. و رساله هم نوشتن شواهدی مقام میکردن چون این بحث رو ما مفصلاً متعاضید یه جو تکرارن اجمالاً هر که ایشان بد می‌ساز تفاصیلش گیر داره. سوئله شیخ انکتب ابن ابل عزاغر بعد ماظوم بعد از اینکه مذموم شد ابن بی عزاغر معروف شد شلمانی افتاد تو این خط ارارتاع و بلو و ادعا خداایی با من خداه چند نفر دور برش البته در ک ما اینج آمده که ادعا لوحی از بین حرفها بعد در سال۲۳ 22 سال یا ۲ 23 خلیف هزارش میکنه با دو نفره از اون موری داشت بهش میگه توپ بکن دو سر یکی تپ میکنید که میگه نه انطلاع ام الا ر رب ثات و بعد هر دو دسته اون روززه که سره هر رو ادام میکنه. هم ابن عبی عزاغل روش شل مقامی رو هم اون شاگرش این قضیه تقریبا در است که شیخ کولینی بغداده ظاهرن یا بغداد آمده زمان حیات فدر شیخ صدوقه صحبت های طیلانی در اینجا داشتیم ما انجام دیدیم وقتی این صحبت ها نیست یک فرصت های دیگری بشه حالا یا حاله لیکن من در بحث های تاریخی پیدا از بحث های رجالیو، از شما شواهد نشون بده که شل مغانی یک شخصیت سیاسی مرموز بوده این نبوده که یا مولا باشه اگر ابن عصیر و تبری در اینجا مدارزه بشه یه شخص مرموزی تشکیلاتی و اوضایی از بغداد رفته تا موصل و برگشته و خونه ایده از شخصیت های شیعه بوده در اصل من باره بحث تاریخیشم نمیشم چون اصلا چجوری میتونه که باره بحث فقهی و رجالی chat بشیم هم باره تاریخی شم. به نظر من بحث اولویت تنها نموده مسائل سیاسی و تشکیلات سیاسی علیه دستگاه خلافت بوده به هر حال من سابقا هم ارز کردم از سال سی و تقریبا در اسطلاح معذقین اولین است که حکومت بنی عباس ضربه کلی میخوره آصال شکست حکومت بنی عباس از این زمانه همین زمان هم که مصادف با آمدن کلینی به وقت داده اینا رو ما میدونیم اما رو درست نمیدونیم چون کلینی شخصیت سیرسی نیست و عظم و ظاهر آمدن ایشون به وغداد با نمیدونیم علایه حاله و بیست و سی. چون خلیفه رو میکشن خلیفه رو مردم و عادی خود همون کلمدگاراش میریزن تو خیمی و تبری میگه مسیر اول وهمی که برای بنی عباس پیدا شد که شکست این دولت شد همین سال سی سد و, بیست و سی. بلات با یه فاصله کمی یعنی در حدود 11 سال بعد یعنی 1100 سال قبل تقریبا تنالان 1434 دیگه سال 334 یعنی 1700 سال قبل آل بغاوه که شیعه بودن البته من احتمال قوی میدم شیعه یزیدی بودن آل بغاوه که شیعه بودن میان و بغداد رو میگیرن یعنی بعد از این حادثه به 10 سال معلوم میشه یک جدالت سیاسی پشت پرده ای بوده که در دستگاه تأثیر داشته من دیگه بحث تاریخی شونجا بحث اصول هست نمیگم چون اصحاب ما در تاریخ ما متعرض این قسمت ها نشدن من ارز کردم که اگر بعضی علاقه به تاریخ دارن سرنخهای دستشون باشه برای کار علایه حالا بعد از این که لعنه در حق شلمقان خارج شد فقیل لهو به مرحوم غسین روح گفتن کیف نعملو به کتبیهی خیلی عجیبه این شخصه دیگه بعد ادعای اولویت میخواه ما میشه و بیوتنا منها ملا خانه های ما پرست که تا های این شخصه هست فرده خبیز فقال مرحوم حسین رو حقول و فیها ماغاله و ابو محمد حل حسن ابن علی صلوات الله, الله علیه ما. و قد سؤل ان کتب بنی فضال از از مسئل شد فقال و کیف نعمل به کتب هم و بیوتنا منها ملا فقال صلوات الله حضور رو ما روا و و ما روا اواته معروفیه دیگه خیلی آینه ذکران اونجور شیف در بحث رجالی که اگر روایتی از کتابنی فضال باشه باید قبول بکن به خاطر این همره امام آقای خوی منارشه کردن در چند در بحثاشون چاپ شده هم بعدا گفتن سند ضعیف راست سند که ضعیف دومش ما اضافه بکنیم هیچ شواهد این حدیث نداره مثلا نجاشی در ترجمه بنی فضل گفته باشه یه مثلا این جایی یکی ایر از این عبارت شیخ در غیبت شیخ هیچ جا خود شیخ حتی در تحصیل استفسار اشاره میکنه این از کتاب بنی فضل غز مثلا این چیزی به معنای متن کامل قصه ما غیر از این مطلب که در غیبت شیخ امامی در کتاب‌های دیگری ذکر ننموده در هیچ کتاب رجالی تاریخی اشاره بی این قصه نداریم که امام فرموده باشه این هم نقطه دوم قیلی زعفه سند نقطه سبا همون که ما عرض کردیم کرا راه خیلی به نظرمال اواز سج آقافیش خوبه رفت سج آن که سج میگفته سج آقافیش خوبه اما ابتداعا محسلی نداره چند بارم عرض کردم چون اولا من فضال در اون طبقهی بودن که اهل رعی نبودن اهل رقایت بودن این فقهشون رعی نبود اون که در کتاب بوده همه روایت این ذرو مارع و آرائشون رو بکنه روشن نیست مضافن به این که اصولا گاهی انسان به نظرم شیخ انسایی به نظر، اگر بزنید این کامپیزه تو بحث تا آده ترجیح یه عبارتی داره که کیف قاس این شیخ بزرگ شل مقانی رو بیتطور بنی فضا بنذمی همش عباراتی شده سابقا که رسائل تذکر تو ذهن هست اون اشکال حالا برو اشکال گفته یا آورده تو ذهن هم نیست یه چیزی از عباراتش در رسائل تو ذهن ما صورت و ترجیه و اون نکتهش اینه که یعنی مشکل این روایت اینه که چون شل مقانی اول خب مستقیم بود فقیه بود و انصافا حقا یباب اگر این تو رضا همون تکیف باشه رو از تکلیف گرفته باشه حالا به هر حال انصافا مرد مولایی شده خیلی مولاست فوق العاده یعنی اگه زمانو خودت چه بکنیم به نظر من شیخ توسی هم تعریفش رو مولا هست خیلی فوق العاده این کتاب البته گفته شده که جمع بین مکتب قوم و برداده اون چه که ما الان در کتاب مییم بیشتر مکتب قمهnabla در هر حال چون راجع به کتاب تعارف عقول هم رجوع به کتاب افتخار رضا هم کلیتاً و هم جزئیتاً صحبت زیاد شده نمیخواه فعلاً وارد بحث بشن به هر حال مشکل کار اینه که این آقا اول آدم سلیمی بود درستی بود بعد منحرف شد وقتی هم فهمیدم کتاب اونا بیوتنا منه ها ملا کتاباش تو خونه ما هر چه کار بکنیم اما راجع به بنی فضل اونم راجع به امام عسکری اصابت بنی فضل بنی فضل یعنی رئیس بنی فضل که واقعا فوق العاده یعنی انصافا بالاتر گفته شده چون فتحی نیست برگشته حسن پدرش بود پدر بنی فضل حسن بن علی خب راجبی او کرامات عجیبی که در بیابان نماز می‌خوند وحوش دور و برش حشرات و وحش مار و غراب و شیر و و او تعرض نمی‌کردن یک حالات عجیبه راجبه ابن فضل پدر هست ابن فضل پدر وفاتش قبل از تولد امام اسکریه اصلا ابن فضل از زمان موسیقی جعفر فتحی بوده یعنی زمان امامه اسکری کتب بنی فضل اگر بین اصحاب بوده اصحاب به عنوان یک فقیه فتحی بهش نگاه میکردن دقیقه میکرد یه معنی داره خود مارو و وزر و ماره و اصلا اصحاب عملا همین کاری میکردن ابن خضاله پدر و حتی پسر پسر از قبل از این حرف و قبل از امامت امام علی پسر فتحی بود اینطور نبود که اول شیعه باشه بعد فتحی بشه اون شلمقانی اول مستقیم بود بعد منحرف شد لذا این اصلا اصل مطلب که امام چطور میفهمه این مطلب را ما چند بار مثلا خیلی ما فکر می‌کنیم یا سوال پرسیدیم علایخانه یک مشکله این این مطلب اینه و سؤال دیگری هست که چطور حسین روح رحمه الله اون مطلب گفت کار فاطان را بیاس از خود مریه بعد نوشتن بیاس باشد شیر شیر چطور شد اون مطلبی که امام عسکری راجع به کتب بنی فضل گفتن ایشون اومد تطبیقش کرد شل موانی با اینکه ظاهرا بیاس ملفاره ده. و اصولا اون مطلب چیه که از امام عسکری سوال کردن خیلی عجیب هستن سوال چیه جواب حضرت چیه از اما خود ما ماره و و در اون ماره و معلوم بودون چیه در زمان قبل از امام ازکری زمان امام جوا زمان امام حادی زمان امام ازکری کتاب بنی فضال مخصن حسن حسن یا زمان امام حادی یا امام جوادی یه چیز بعد ازشان که که که شد 20-20-22-24-24 وفات حسن بنهلی امام فضاله این چجور میشه این مطلب خب معلوم بود و بیوتران منحامل عمل میکردن به عنوان روایت اون را که عمل نمی کردن تغییر فطری بود خب یعنی اون چیزی که امام میخواست بفرما خودش انجام کاری میکرد گفت تحصیل حاصل است دیگه خب حشیام کار هم بود با کتاب بنی فضل چه معامله میکرد معامله روایت چه <تصفح> علایای روایتش موند با این هم کم کم تا این همه تا اون زمان نشود اون وقت میشد احتمالش بود زمان امام جو حضرت موسف نجعفر ایشون فتحیه بوده چون <تصفيق> فتحیه بعد صوت امام صادق خب از موسف جعفر و حضرت رضا و حضرت جواد و هفت که بگیش خودش تا حضرت جواد و عوال امام حادی بچه هاش هم از همون زمان فتحیه بودن تا بعد پسرش میگه من 18 سالم هم بوده 24 باشه 18 سال باشه خب زمان حضرت جواد دو دنیا آمده این از همه اولم فتحی بوده سازه علی شما و احمد و حسن که احمد و محمد روزه تر بوده یا نه ظاهراً نه شده برش بله اقول و مغاله ابو محمد ظاهراً نه شده امکان داره می دونم قبوله البته ببینید همینطور که آقای خویی از و تا خویی نوشتن که این معنای این عبارت نیست که روایت ابن فضال قبول کنید ولو بعد از اونها شخص ضعيفي باشه این خب ولو شخص ضعيفي از اون نقد بکنه مثلا اینجوری باشه بعضی که مثلا ابن فضال از امام صادق مهم ترجمه این شخص ضعیف از امام صادق نعد قبول نمی‌کنه نه ببینید اولا من نمیخواستم وارد بحث چون شما فرمدید من چران این توضیح رو عرض کردم اصولا در لغت عرب در افتدا و ازشم تا انتها یک نوع اسمش بزنیم قصور اسمش بزنیم قابلیت یک خاص لغت تعابیر قانونی خیلی با اون لغتی نیست که الان ما به کار میبریم ما مثلا الان جاهایی که مولویه، مولویه، عوامر مولوی مولویت اوامر مولوی اوامری هستن که مخالف از اونها کلاخ داره زندان داره، عقوبت داره. این اصطلاح هم مولوی اصطلاح مولوی اینه کلمه احکام مولوی احکامی هستند که مخالفت اونها اقوبت داشتن احکام ارشادی احکامی هستن که مخالفت اونها به درستان اقوبت نداره مثلا ارشادت به باطل بودنه عمل باطله وقت مشکل در لغت عرب این بود تا زمانهای زیادی نه اینکه آلو فرسونی یه تعبیر رو به کار می که این تعبیر مناسب با مولویت بود لیکن مراد بخش ارشادی بود این دوتا رو باید ما باید کاملا در لغت در استعمالات روایات اهل بید و حتی آیات در نظر بگیم مثلا لا توسل فیوه بر مالایو کل لحمه الان اینجور می کنم ولو به سیغی نهیه نه نحی عادتا مولویه لیکن مراد جدی این است که نماز در بر مالایو کل لحمه باطلی مراد میبینیم خود مارو خود خود امره عادتاً عمد لغت عرب داره مولویتی عادتاً این طوره خودو ماره با لیکن مراد از عقض در اینجا امر و عقض کنایت از حجیت روایاتون اون اونم نه حجیت فعلی حجیت اختزائی یعنی روایاتون ها فی نفس حجده خودو آمده ضرور آمده خوب دقت بکنید. اون نکته کلی در ذهنتون باشه اصولا این عدی از معاصرین ادهی از اینه که اهل لغت هستند و بحث های فقه و لغت دارن متعرض این نکته که اصولا زبان عربی یک زبان قانونی نبوده و ارز کردم که دارن ادهی از مستشقیقین معتقدن که قانونیت و بحث علمای اسلام زن در اصل اسلام نبوده نه این اشتباهه تعبیر قانونی نیست نه که مطلب قانون مطلب درسته لیکن تعبیر هنوز تعبیر خاصی بوده. بخواستان بگن این, این حجت فعلی هم مراد نیست. حجت اقتضاییه. چون ممکنه روایت بنی داشته داشت بعد بعدی روایت از ابن نبی عمر داشت که معارضش. این مراد این نیست که اون حجت فعلی مراد این خضوع ولو به لحظه امره. امرم جزا احکام مولوی میست. دقت می کنیم؟ این خضوع در اینجا یعنی حجت اون یعنی ماربا و حجتون این کنایت از حکم ارشادی اینو خوب دقت بکنیم ما اصولا توی به اصطلاح توی تو روایات ما و زبان عرب این نکته رو زیاد داریم هر که در ادیه گفتن چون لغت عرب زمان فیغمبر لغت قانونی نبوده ما لغت قانونی قبل از اسلام داشتیم حتی روم باستان قوان روم باستان لغت قانونی من اخیران تو بحث مکاسر نهار کردم این تنوری نهارو میکنه من شیعن فقط ملکه جز قوانی روم باستانه الان تو روایت ما آمده منحاز شیعن این لغت لغت قانونی هم استثوره منحاز ملکه لغت قانونی است. اگر میگو منحاز شیعن فتسر رفی این قانونی هست الا اخفت شیعن فکله این قانونی هست چون سیغه امر از امر مخواد ملکیت در بیاره اما من حاضشه ای ملکه قان این اصطلاحات رو خوب دقت بکنید. این کار کردن روی اصطلاح تحلیل زبانی یک نکسی بسیار مهم میه در و لات خضو مارو و البته مردم استاد جدی گفتن این تغییربیری که من میگم سر از تغییربیریشانه. مراد این نیست که وجود اخذه. ظاهرش اینه انگه شما عاصل نکردین گناه که این شلاق ضو میزن نیست. مراد وجوب اخذ نیست مراد حجیت یعنی روایات اونها حجت آرام اونها در سه حجت نیست اصطلاح اخراید خود اون باره و ولو تو امر آمده هر دوش هم تو سیغه امر آمده لیکن مراد امر نیست مراد ارشاد به حجیت دقیق از این راجع به این حدیث مبارک اون اشکالام عرض کردم اگه پیدا کردیم بعد بفرمایید. این راجع به این مطلب که چطور اولاً امام عسکری فرمودن، ثانیاً چطور حسین روح رحمه الله قیاس فرمودن با شلمقانی که خب بسش کاربرد کرده. علی حاله این روایت الا تقدیر حجیتش که شون حجیتش هم ثابت نیست، انصافاً مزیتی رو برای کتب بنی فضل ثابت می‌کنه. این باز قبولی کرد انصافا کتاب بنی فضالی که در زمان امام عسکری بودن برای اونها ثابت اون از کتاب بنی فضال هم مقدارش به کریخهای صحیح به ما رسیده این اثرا داره ها خیال بعضی از علمای ما بناشون به اینه که اگر از کتاب بنی فضال مخصم ابن فضال تدر باشه ولو بعدش هم مرسل باشه قبولش بکنید یکی از احادیثی که محله اطلام هست در باب خمس یه روایت واحده داریم در مسئله خمس که منحصرا هم به همین روایت در این جهت یعنی منحصره از ابن فضلان بعض از اصحاب اون عبدالله که میگه خمسو کلا به 사ادات بدیم فلا یخرج منهم الى غیرهم ان آنها اصل خمس کلا یک سهم ما و سن و 사다ت نداره کل خمس سهم 사다ته همه خمسو یکجا به 사다ت بدی این منحصر به یک روایت هست. ابن فضال مرسلم هم عبدالله و کسادفاً در مجموعه روایات مصرف خونس به این لحاظ دارم همه شون اصح بگی این لحاظ, بگی این لحاظ بقیه همه گیر دارم اصح روایات مصرف خونس انصافاً هم این رواهته و اینجا مرسله من برای نمونه ارز کدم این مخواد بگی بحث من موجه یک بگیمی من هم نه مراد بودجیتشه و انصاف قضیه از قبل من انصاف قضیه چه ابن فضل فرزند چه ابن فضل پسر حسن علی واقعا فوق العاده یعنی اکثر ابن فضل پسر که اضافه بر اینکه خودش فقيه هست و واقعا جای وقدره ایاشی شهادت انحس میده در کتاب کشی هست یا خواستم بیان آخرش مرموم گرشی از قول ایاشی بیگه تم... ال... تمالقیت و فی مالقیت فی خراسان و عراق و قوم اتزر ولا اتزر من علی ابن حسن الفضان تویشون شاگر بسنم هم شهادت انحس ای نه این که بگیم در این مطلب اواخر جال کشی این آمده به یک مناسبتی ایاشی شهادت انحس در کتاب کشی هم آمده سن معتبره هیچ جای بحث نداره و انصافا همینطوره. طوره این راج پیدر که واقعا خوغلابه هست حسن ابن علی در فقهش در بزرگواریش در جلالت قدرش فضل شازان شاید مثلا سنش بیچ سال بوده میگه من در بغداد که بودم دیدم پیره مردیس خیلی نورانی چی نیشون بعد پیدرم گفت که این حسن ابن علی اون فضاله میگه بعد که فهمید من دنبال میام، میامد پیو اتاق من تو اون مسافرخانه که بودی کتاب برای من رواست میگه. میگه در همون سال از طرف خاندان و بغرغش امرا از خاندان تاهر ماده خراسان آمده بودن برای حج به بغداد اسم ابن فضل شینده بودند اصرار کردند به ابن فضل که دیدن امیر بره قبول نکرد ایشان گفت منی که جوان بودم تو اتاق میام پیش من که کتاب رو به من حدیث بکن گفت فهمیدم که این به خاطر دینشه به الله اگر امکانه پول و صحبتو امیر بود, بود, بود اونجا میره نه اتاق من طلبیده در اون صد نکیره مردید یعنی واقعا اینها اضافه در جهات علمیشون یک جهات اقتدارت خاصی هم داشتن و برای علمی. یه نکته ای من در اینجا بگم چون ندیدم الان نصف گذشته دو سه دقیقه کسی متعرض شده از عجایب اینه که در این سوال کتاب عمار مطرح نیست و اینکه انصافا شاید مشروط ترین کتاب میشه فتحیات کتاب عمار صاباتیه آیا این معناش این است که مثلا ایمه علیه مسترام امام عسکری اصولا به کتاب امار ارجاع ندادن ارجاعشون فقط به کتاب بنی فضال بوده این چه یه نقطه مهمیه؟ چون الان ما یکی از معضلات روایات ما روایات امار شاید من خود من 20 مورد لایقات بیام بیشتر در جواهر در, جواهر در جاهای مختلف جنده های مختلف میگه که حدیث از طریق امار است المحروف به شوزوست شاید بادای هشتا دستات روایات امار شدوز داره چیز عجیبیست قابل جواب هست بعضشان قول جواب نیست من جایش اینجا نیست یکی از مشکلات ما الان شدوز روایات ما و تا ما مال از این عبارت که میگه بنی خزان و اسم کتاب امار و نیورده احتمال میدم شاید نظر امام این بود